ایشون راجعه نجاشی راجعه به بخش رجالی جاده صحبتی نکرده سجاده کی فقط نوشته که جاده از که نقرد فقط نویشته که کرده که پدرش از امام موسی رو جرفت نمه راجعه به خودش اسم نوارده به قرد فرمونیم بعد ایشون فرمودند من یه مقال عبارت نجاشی می کنم لحوم کتاب نواده هست کردم کراون نجاشی بعضی جا میگه کتاب ان نوادر و بعضی میگه نوادر بدون لام اون که ان نوادر به احتمال بسیار تبیع ادمیه اسم کتاب نوادر اون که میگه کتاب نوادر بدون الف لام و لذا شایدم علمی باشه ولذا عرض و لذا ارزش کردن دو کنده میشه له کتاب نوادره له کتابن نوادر رو نوادر بدون صرفه ممکنه صفت برای کتاب باشه و در بعضی از ما الان تو ذهنم نیست هم الان تو ذهنم نیست از عجیب اینه که نجاشی بدین هر دو جمع کرده هم نوشته ان نواده و دو دو و کتاب نواده دو تا در شخص واحد هر دو عنوان رو آورده که این دقت مرحوم نجاشی است و نشون میده که به اصطلاح ایشون کاملا بین این دو تا عنوان فرق گذاشتند حالا شرح بیشتر از این مطلب ایجادیه و بعید نیز اگر بله جمع نادره یعنی بدالشسته پدر یعنی توصیفه من یعنی یه کتابی است که درش روایات نادره داره حالا این موارد استفاده مم وقت اگر کتاب ان نوادیر باشه اسم کتابه اسمی است که معلب گذاشته این ممکن است مراد روایاتی باشه که ایشان قبول داشته آورد. آورده خود کتاب معروف ابن نبی اومد که بین این اصحاب دست به دست میگهش کتاب معروف است از نوادر چیش جلدن بوده هم چیم طبقا عرض کرده اما وقتی یه لحو کتاب نوادر بعید نیست اشاره به نکته دیگری باشه اون که این کتابی ایشان اصولا عنوان نداره و روایات متفرده داره من عرض کردم مرحوم کلینی در کتاب کافی و مرحوم شیخ صدوق در یک مواردی از کتاب فهد صدوق مثلا تو آخر نکاح باب کلمت نوادر و او آخر نوادر داره اما کلینی بیشتر داره در کتاب کافی کافی 40 با 50 با هشتاد با میاره یه باب نادر باب نوادر و و در اون با روایاتی میاده که راجع به احواب صابقه اما از اونها جدا کرد صدوق هم این کار داره تحذیب و استفسار نداره اون وقت مرموم شیف مفیق ها برنه چرا جدا کردن ما الان دقیقا نمیدونیم الان بیتونی دقیق بگیم گایی هم همه ایک مرموم شیف تو باب نواقه رو بوده اصالی صحیح هم داره کاملا صحیح ما دقیقا الان نمیم سویشون جدا کرده و متاسفانه در کتاب وسایل مرموم استاب وسایل جدا نکرده مثلا بیم محمد ابن که فیلم آن نمازه و علا آن اون که از وسایل چاپ شده چاپ مرموم رباني، چاپ این آلو بیم متاسفانه در حاشی هم اشاره نگردن که آن از کلمی نکته ایس باید بینیسن که این بباید منوشه کلونی علو معطوت به این باوه اما تو باب نوازه و تو باب خودش نریو. متاسفانه اون کاریه که در تبیین شده با نوشته. خیلی زیاد نداره در حدی از اخلاق آخرش باب نوازه داره واظن بعضی صریحه. حالا چرا این کار شده؟ ما از همین که قم تعریف ببینیم تا میدونه هر کلونی عمایره که اینو صدا وا. منظور شیخ مفید رساله ای الان در دست هستی معروف است به رساله عددیه چاپم شده شرح ها در رساله همون شده این بحث متوقف شد من توضیحات کافی رو جبین رساله عددیه از هم در این رساله عددیه و اختیق یک تایفی روایت مخادرت بکنه میگه که این روایت در اون کتاب در اقواق نواده رو برده علمان ذکر و روایات زعیفه. ایشان اینجور استضاره از ک رساله ادبیه شیخ مفید این رساله ان ادبیه است که در دو مصنفات شیخ مفید چاپ شده این مجموعه مصنفات شیخ مفید است این در حقیقت اسمش رساله ادبیه نیست یعنی منظور حاجی نوری در مصادر اسمش رساله ادبیه به تل مخاب رعایت لرد نام شیخ مفید رساله ادبیه این اسم کتاب جوابات اهل موصل اسامی رسالات جوابات اهل موصل اشتمالا اسم رساله علیه مان شد. یه شهری داره این که پیدا شد چی میپیداش پیدا داره واقعا شیر مفید دمان سید است، یه توضیح ها داره که الان اینجا نیست از سلام اگر این مطلب درست باشه، این رساله مال شیخ مفید باشه یا سید باشه. مال هر کدومش. این مطلب درست باشه معلوم میشه مربون کننده اون لیتو لعلش این بوده. و حالا توضیح خیلی ساده. این ارزش داره که الان در شاکهایی که از وسائل حتی جامعه الهی است جامعه الهی‌ها متأسفانه این کارو نکرد اول بچه‌ها مثلا شیخو صدوق و ابن اسنای رحم حالا این توی باب نواظر حتی اسکم نواظری فقیر کم انصافش از زیاد است به ذهنم تو مقلّه شیخ مفید یا داره داریتون اومد میشم اما تضیب و نداره نهاییه شیخ طوسی هم شد. حالا این باب نواظر احتمال داره ده کتاب اینم اینجا به این معناه باشه غیر از ان ها باشه اصلا کتاب روی اومیر انواده هست این معناه نیست که به ضعیف زعیف هست اما این کتاب شاید اینطور طور باشه از این که مرموم شیخ توصیه هم بشه اس نداده گفته لحو کتاب رو بوده مرموم نجیزی گفته لحو کتاب نواده اسم اس نباده در حال توصیه بشه کرده لذا بعید نیست چون خودش هم زعیف بوده این به اصطلاح ناظر به مسئله که روایات اون کتاب هم روایات خیلی رکشنی نیست البته نجاشی تسریه به تسعیف کرده کوفی هم ضعف و, و اصحاب هم این به سر